فصل ده امام موسی بن جعفر علیه السلام مده امام کازم علیه السلام باب الهوائجی و تو بن جعفری از نسل احمدی و ز اولاد حیدری با ذکر نامتان گره هم باز می شود آری زوصف و مته من آقا فراتری هر سائلی به سوی تو دستش کند دراز ای آنکه باب رحمت و حاجات را دری ای پور صادق و پدر سامن الحجج هستی پدر به احمد و معصوم پروری ما مادر قمیم ریز خور دختر شما معصومه تو داده به قم شور دیگری دارم به سر هوای تو را یا ابل حسن آقا مرا پذیر مقامت به شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم از جانت توان و تاب را برد هم ناسزای دشمنت قلب تو آزود گفتی بیا بس کن تو سندی ناسزارا من را بزن در کوچه ها مادر کودک خود نه از زن آوازخان و کند و زنجیر از زهر نه آقای ما از ناسزا مرد باب الهوائج در همان زندان آخر جان را به معبودش چه مظلومانه بسپارد آن آخری ها از خدایش مرگ می‌خواست چون ناسزاب و زهر از او تاب را برد.